صفحه چهارصد و پنجاه زیبا هم پس از شنیدنان عبارت از دهان خاجه بلافاصله دکان را ترک گفت و در همان لحظه به من گفت من ترتیب کار را می دهم و بعداً خاجه به شما خواهد گفت و به همان ترتیب هم انتظار دارم انجام دهید من هم فورا به دکان بازرگانانی که منتظر دریافت طلبشان بودند رفتم و طلب همگی آنها را پرداختم و بی در انتظار روزی بودم که خاجه پیغام بانوی زیبای مرا به من برساند عاقبت خاجه با آمدن خود مرا از انتظار درآورد و همینکه به دکانم وارد شد به او خوش آمد گفتم و خوشرفتاری کردم و از بانوی او احوال پرسی کردم در فاسخم گفت ای خوشبختترین آشقان جهان بانوی من سخت گرفتار عشق تو است و از دوری تو رنج میبرد و بیمارگونه است آرزو دارد که تمام لحظه‌های زندگی را در کنار تو بگذرانند ولی به خاطر مردم است که هر روز به سراغت نمی‌آید از عشق تو مینالد و تمام فکرش متوجه تو است تو آدم خوشبختی هستی که بانوی مرا به خود علاقه من ساخته اید من در پاسخ خاجه گفتم ظاهر آراسته و رفتار باوقار این بانو با سایر بانوان فرق دارد و نشان می‌دهد که بزرگزاده است خاجه گفت تو درست است زیرا بانوی من مورد علاقه زبیده بانوی اول حرمسرای و رشید خلیفه مسلمین است و از کودکی بانوی مرا نزد خود پرورش داده و او را چون فرزندش دوست دارد و سرپرستی همه کارهای بانو زبیده با بانوی من است او پس از دیدار تو و عشقی که در دلش به تو احساس کرده به ملکه زبیده گفته و ملکی موافقت خود را به ازدواج او با تو اعلام کرده و گفته است میل دارد که از عروسی یک بار تو را ببیند تا مطمئن شود که بانوی من مرد شایسته ای را برای همسری خود برگزیده است. ملک زبیده خودش مایل است که جشن عروسی را برگزار کند و هر گونه هزینه را به عهده گیرد. اینک من تو را راهنمایی میکنم که چگونه به قصد وارد شوی. زیرا در قسمتی که ملک زبیده اقامت دارد، مردها حق ورود به آنجا را ندارند، ولی بانوی من تدبیری به کار است. که باید به طور دقیق رعایت شود تا تو بتوانی در محل اقامت ملکه وارد شوی و این امر باید کاملا محرمانه و به طور پنهانی صورت گیرد وگرنه با کمترین بیدقتی جانتو در خطر خواهد افتاد من از هر جهت به او اطمینان دادم که از سوی من نگران نباشد و آمودم که طبق راهنمایی او عمل کنم آنگاه خاجه گفت امشب باید کنار مسجدی که ملک زبیده در کنار رود دژده بنا کرده است منتظر باشی شخصی به آنجا میآید و تو را می بیند من هم گفتم بسیار خوب هنگام قروب به مسجد رفتم بعد از انجام نماز مغرب و رفتن نماز من در کنار مسجد مقابل دجل ایستادم. هنوز مدتی نگذشته بود که دیدم قایقی به سوی مسجد در دجل حرکت می کند و پاروزنان آن همه از خاجگان حرامسنای خلیفه اند و همین که به ساحل رسیدند. چندین صندوق بزرگ را از قایق بیرون آوردند و به داخل مسجد بردند و بعد هم دنبال کار خود رفتند و تنها یکی از آنها در آنجا باقی ماند او همان خاجی بود که در هر بار همراه بانوی زیبای من بود درست در همان احوال بانوی زیبایم را دیدم که به مسجد نزدیک می شود فورا خود را به او رساندم به محض دیدن من گفت نباید وقت را تلف کرد و در همان لحظه یکی از همان صندوق‌ها را گشود و گفت مرای حز جان تو و من باید در این صندوق خود را پنهان کنی من احساس میکردم که دیگر مجالی برای تردیل وجود ندارد زیرا خیلی دیر شده بود من هم بدون چون و چرا خود را داخل صندوق جای دادم ملافاصله در آن بسته و قف شد و حس کردم که آن را از آن نقطه حرکت دادند و صدای بانوی زیبای من به گوشم رسید که به هر دو خاجه هرم سرا دست میداد آن را به داخل قایق بگذارند. و خودش هم در حالی که داخل قایق میشد دستور داد به سمت قصد برانند تا صندوقی را که من در داخل آن بودم تالار اختصاصی ملک زبیده هم کنند. پیش خود فکر میکردم دست به کار خطرناکی زدم ولی دیگر دیر شده بود و راه بازگشتی نبود. قایق هم به در ورودی قصد در کنار دجد رسیده بود و صندوق را به نزد خاجه باشی رئیس خاجگان حرم بردند تا کلید در ورودی به تالارهایی را که مخصوص بانوان حرم سراست از خاجباشی بگیرند و خاجبوشی هم طبق روش همیشگی باید هر صندوق را بازرسی کند و سپس اجازه ورود آن را به داخل تالار بانوان حرم بدهد خاجبوشه که موقعی استراحت او و در خواب بود ناچارم بیدارش کردند و او هم از این مزاحمت نا هنگام ناراحت شد و به بانوی زیبای من ایراد گرفت چرا در این وقت شب آن هم به این دیری به قرص برگشته است و در حالی که ناخشنود بود به سخنانش ادامه داد و گفت من باید یک یکی این صندوقها را باز کنم و ببینم چه چیزهایی در داخل هر کدام آنها است. اتفاقا اولین صندوقی که قرار شد گشورده شود صندوقی بود که من در آن پنهان شده بودم وقتی از این مطلب آگاه شدم حس کردم با مرگ بیش از چند ثانیه فاصله ندارم و خود را به سرنوشتی سپردم. بانی زیبای من که کلید صندوق در اختیارش بود نره کشید که نمی توانید در این صندوق را باز کنید. زیرا آنچه در این صندوق است مربوط به ملک زبیده صاحب اختیار من و شماست در این صندوق اشیاء گرانمههایی است که یکی از بازرگانان برای ملکی فرستاده و تعدادی هم بطری های محتوی آب زمزم است که از مکه فرستاده اند و هرین یکی از آنها بشکند آب موجود در آن تمام اجناس ملکه را آلوده می سازد. و مسئول پاسخوی آن شما خواهید بود و ملک گستاخی شما را نخواهد بخشید با این سخنان خاجباشی عقب نشینی کرد و جرأت نکرد در آن صندوق را باز کنند و گفت بسیار خوب آنها را به تالار ملکی ببرید و تمام صندوقها را به آنجا بردند هنوز صندوقها را درست جابجا جا نکرده بودند که از هیاهوی مردم معلوم شد خلیفه حارون و رشید در حال ورود به قصد و تالار ملکه است در این لحظه بسیار ترسیدم هارون به محصه ورود به تالار از بانوی زیبای من که سگولی ملکه و محرم او بود پرسید در این صندوق ها چیست بانوی زیبا پاسخ داد پاسختاد است که ملکه خواستند و میل دارند آنها را ببینند بانوی سگولی ملکه که نمیخواست در صندوق را باز کند پاسخ داد اینها اجناس مخصوص بانوان است و از طرفی هم ملکه میل دارند نخستین کسی باشند که با دیدن آن خوشحال شوند اگر قبل این صندوق ها باز شده باشند ملکه از خوشحالی مورد انتظارشان محروم خواهند شد خلیفه نهیب زد باز کنید میخواهم آن را ببینم بانوی زیبا باز هم در پاسخ خلیفه اظهار داشت ملکه از این عمل ناراحت خواهند شد خلیفه فورن گفت چنین نیست من اطمینان میدهم که ملکه ناراحت نشود خودم با او صحبت خواهم کرد بیا بیا جلو و این گفت را باز کن من میدیدم که چاره جز اطاعت فرمان سلطان مسلمین نیست در این لحظه تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد و خلیفه روی زمین زانون زد و به بانوی سگولی دستور داد تمام صندوقها را نزد او بیاورند تا یکی یکی همه آنها را باز کند و همین کار را هم کردند و بانوی سگولی صندوقها را باز می کرد. ولی برای آنکه وقت بگذراند تمام اشیاء زیبایی داخل ها را به سلطان نشان می داد. تا شاید بدین ترتیب او را از تماشای آنها خسته کند و او از دیدن صندوقی که من در آن پنهان بودم، چشم نظر کند. اما این تدبیر هم کارگر واقع نشد. خوشبختانه صندوقی که من در آن پنهان بودم در ردیف آخر گذاشته شده بود و قبل از اون که نوبت به آن صندوق برسد، سلطان گفت: بقیه ها را ببرید و این صندوق آخری را باز کنید. بخت سخن خلیفه را شنیدم مرگ را احساس کردم در همین لحظه صدای ملک به گوشم رسید که می گفت یا امیرالمؤمنین. اجازه دهید این صندوق را فقط من و شما به تنهایی ببینیم زیر اشیاء شخصی من در آن است سلطان با شنیدن این سخن داد بسیار خوب در این صورت آن را باز نکنید بعد سلطان به نزد ملک زبیده رفت هنگامی که خاده‌هایی که صندوق‌ها را به تالار آورده بودند از تالار خارج شدند، بالوی زیبای من یعنی سگولی ملک زبیده در صندوق را گشود و به من گفت بیا بیرون. از این در داخل شو و این پلکان را تا انتهای آن بالا برو. در آنجا بالا خانه است و تا آنجا منتظر باش تا من بیایم. من هم همین کار را کردم و او هم در را از پشت قفل کرد. بعد صدای سلطان را شنیدم که با سگولی ملک درباره اوضای شهر هایی کرد. و بعد از چند دقیقه آنجا را ترک کرد. وقتی سغولی ملکه مطمئن شد دیگر کسی در آن اطراف نیست، در را باز کرد و سراغ من آمد و از اینکه مرا دچار این همه دلحوری و ترس کرده بود، از خواهی کرد و گفت: سبب واقعی همه اینها عشق است. عشق به تو به من این همه جسارت و بی‌باکی داد که این همه خطر برای تو و خودم به وجود آورم. دلحوری من هم کمتر از دلحوری تو نبوده است. ولی ناچار بودیم برای خاطر عشقمان این راه پرخطر را طی کنیم. اینک ای خطر پایان یافته است شب را در همین اتاق بگذران تا فردا را به حضور ملک زبیده ببرم زیرا در طول روز ملکه تنها است و سلطان فقط هنگام شب به دیدار او میرود آنگاه مرا ناز و نوازش کرد و از اتاق خارج شد فردا صبح سغوله ملکه یا بهتر بگویم اشق من نزد من آمد و قبل رفتن به حضور ملکه طرز شرفیابی و آدابز سخن گفتن با او را شهر داد و پاسخ پرسش هایی را که می دانست ملکه از من خواهد که از به من آموخت. آنگاه همراه او به تالار مخصوص ملکه رفتیم تالاری بود که به زیباترین وجهی آرسته بود و گرانبهاترین لوازم و اساس در آنجا دیده می شد همه چیز شاهانه و رویایی بود در میان تالار تخت زرین گذاشته بودند. و بیست کنیزک زیبا با لباسهای گرانبها و یک رنگ در دو طرف آن ایستاده بودند در این هنگام ملکه در میان بیست کنیزک جوانتر و زیباتر که همگی از همان نوع لباس برتن داشتند وارد شد و قار و شکوه سلطنتی از چهره و رفتار او نمایان بود آنقدر جواهرات قیمتی بر او آویخته بود که به سنگینی گام بر برمیداشت ملکه بر روی تخت نشست و سوگولی او یعنی عشق من ند سمت راست او ایستاد و بیست کنیزک زیبا و جوان هم در دو صفحه مساوی آتش دورتر در دو طرف ایستادند. همین که بانوی اول کشور بر تخت خود جای گرفت، کنیزان اشاره کردند که به حضور ملکه بروم. و از میان صفان ها نزدیک تخت رفتم و زمین ادب بوسیدم و روی زمین به حالت سجده باقی ماندم تا ملکه گفت: برخیز. من از روی زمین برخاستم. بعد درباره نامونشان خود و شغل و وضع مالی من و خانواده هم پرسش هایی کرد که در همه موارد پاسخای شایسته دادم آنگاه ملکه گفت من تو را شایسته همسری دخترم تشخیص دادم و رضایت می دهم که دخترم انتخاب شایسته‌ای کرده است من شخصا ترتیب برگزاری عروسیتان را خواهم داد من این شما باید مدت ده روز در همین قصر میهمان ما باشید تا در این مدت رضایت سلطان را با این ازدواج بگیرم. به فرمان ملکه مدت ده روز در تالار سگولی ملکی به سر بردم و از من پذیرایی شد. ولی در این ایام حق ملاقات او را نداشتم و من هم به این وضع عادت کرده بودم و ابراز نخوشنودی نکردم. در این فاصله ملکه سویده موافقت سلطان را گرفت و ثروت بسیاری هم برای به خود وزع مالی عروس در اختیار او گذاشتند. و بعد از آنکه ده روز سرآمد، آنگاه طبق دستور ملکه، خطبه عقد دائمی زناشویی بین سگولی ملکه زبیده با منجاری شد و سند ازدواج به امضاء او رسید. آنگاه پذیرای آغاز شد و رقصندگان زن و مرد رقصیدن آغاز کردند و ده شبانه روز جشن عروسی ادامه داشت و بزرگان بلندپایگان شهر در این جشن بزرگ شرکت جستند. شب رهم مراسم نهایی و دست به دست دادن عروس و داماد بود. در این شب عروس و داماد را جداگانه به گرما ببردند و بعد از آن پذیرایی شایانی برای شام به عمل آمد. انواع ها و نوشیدنی ها فراهم بود. از جمله نوعی غذای گوشتی بود که لابلای گوشت را آنباشته سیر سیر کرده بودند و آن را خوراک راگو مینامیدند همین راگویی که امشب به من اصرار میکنید بخورم. بقدری خوشمزه بود که تمام مدت سر میز شام از آن خوردم و همین خوراک راگو سبب بدبختی من شد زیرا پس از دست کشیدن از غذا در پایان شام فقط دستهایم را با دستمار پاک کردم و آن را با آب نشستم این قخلت من از شستن دستهایم بزرگترین گناه نابخشودنی برایم به شمار آمد نور چراغهای تالار بر اثر های روشن شب را به روز تبدیل کرده بود و نوای موسیقی و آواز سراسر فضا را پر کرده و شادی و سرور در همه جا و در بین همه میهمانان دیده میشد. در این شرایط من و عروس را به تالار بزرگ دیگری وارد کردند. در میان تالار دو تخت زیبا که با گل و جواهرات آراسته شده بود دیده میشد که هر کدام از ما بر روی یکی از آن تختها قرار گرفتیم. ساختوش عروس چندین بار عروس را به اتاق مجاور برد و آرایش و لباس های او را تغییر داد و دوباره به تالار بزرگ و او را به من نشان داد و سپس بر تخت مخصوص عروس نشانید این بود بودی در طول ده شبانه روز جشن عروسی در فاصله های معین انجام میشد. وقتی که میهمانان در آخر شب مجلس عروسی را ترک گفتند من و عروس به تالار دیگری که خوابگاه ما بود رفتیم و من جلو رفتم تا او را در آغوش گیرم و عاشقانه ببوسم اما به جای ابراز شادی و هماغوشی مرا عقب زد و آنچنان خروشی برآورد که تمام بانوان درباری سراسیمه به تالار ریختند و پرسیدن چه پیش آمدی شده. به ما بگویی تا شاید شما را یاری خوریم عروس زیبای من گررش خطاب به من گفت ای نادان در چنین شبی در تایی خود را آلوده به بوی زننده سیر کرده ای و بدون آنکه آنها را بشویی به خود اجازه بوسیدن و هماغوشی با مرا را میدهی. در حال لحظه از بانوان درباری خواست تا شلاقی برای زدن من در اختیارش قرار دهند. بانوان درباری به او التماس کردند مرا ببخشد. ولی او با حالت براشفته گفت: چه گفتید؟ شما انتظار دارید من چنین آدم کسیفی را تحمل کنم و اجازه دهم ده به من دست زند؟ خدا مرگش دهد، او را روی زمین بخوابانید. هر چه زودتر شلاقی بیاورید. خلاصه دستایم را یکی گرفت و پاهایم را دیگری و مرا رو روی زبین خواباندند و همسر زیبایم هم با تمام سنگینی و به شدت روی من افتاد به طوری که به سختی می توانستم نفس کشم بعد خطاب به سایر بانوان گفت او را نزد حاکم ببرید تا دستی را که با آن خوراک راگو بر دهانش گذاشته قد کند من فریاد میزنم خدایا به من رحم کن آیا سزاوار است که با ضربات تازیانه بدنم سیاه و کبود شود و تازه با این همه مشقت دستم را هم قذف کنند و تنها گناه من آن باشد که خوراک راگوی سیردار خورده و فراموش کردم دستم را تمیز بشویم این مجازات به هیچ وجه مناسب با گناهی که کرده نیست لعنت بر خوراک راگو لعنت بر آن آشپزی که آن را تهیه کرده تمام بانوانی که در آنجا بودند بر من رحم آوردند و از همسر زیبای من تقاضا کردند که خود را به خاطر بوی سیر ناراحت نکن و دست از گریبان این بیچاره که آدم ساده لح و آمیست، بردار به او گفتند که این آدم از شخصیت و مقام تو آگاهی ندارد و نمیداند در برابر تو چگونه باید رفتار کند، او را ببخش به خاطر خدا هم که شده خشم خود را سرکوب کن و تقاضای ما را بپذیر همسر زیبای من انها گفت، من رفتار این مرجان نمیپسندم باید به او بیاموزم که در زندگی چگونه باید غذای سیردار خورد و دست خود را کاملا تمیز شد. من نشانه های محسوسی در بدن او پدید میآورم تا همیشه یادآور او نسبت به این موضوع باشد. همه بانوان درباری روی پاهای هم سرم افتادند و از او خواهش کردند که دست از مجازات من بردارد. ولی او بدون اینکه توجهی به درخواست آنان کند از اتاق بیرون رفت و سایر خانم‌ها هم همراه او رفتند و مرا در تالار تنها گذاشتند. اقامت من تا پایان روز دهم ده در آنجا ادامه داشت و در تمام این مدت تنها بودم و فقط کنیزک پیری برایم غذا و آب می‌آورد. بالاخره از او پرسیدم: «به سر همسر من چه آمده است که او را دیگر نمی بینم؟ پاسخ داد که از بوی سیر بیمار شده است. «تو چرا این سیر لعنتی را خوردی؟» و چرا پس از خوردن دست خود را خوب نشستی و تمیز نکردی من با این پیشامد با خود می گفتم چگونه ممکن است که این خانم های زیبا و مهربان در حال دارای این رفتار خوشونت میز و انتقامجویانه جویانه برای خوردن سیر باشند ولی من همسرم را می پرستیدم. یک روز کنیزک پیر به من خبر داد که همسرم به خودی یافته و به گرمو و برفته است و به نزدم می آید وی به من توصیه کرد که بردبار باشم و خود را با رفتار همسرم تطبیق دهم روز بعد همسرم به دیدن من آمد و گفت خوشحالم که تو را میبینم با بیحرمتی که تو به من نشان دادی باز هم تو را دوست دارم اما تا زمانی که بیحرمتی تو را پاسخ بگویم نخواهم توانست با تو زندگی کنم و بیحرمتی تو آن است که بعد از خوردن سیر دستهایت را کاملا تمیز نشستی آنگاه بانوان درباری را صدا زد و آنها به داخل تالار آمدند و مرا به زور روی زمین خواباند و دست و پای مرا محکم با تناب بستند و بعد با تیفی که در دست داشتند شستهای دست و شستهای پایم را قطع کردند. یکی از بانوان بلافاصله مرهمی بر زرخهای من گذاشت که فورا خون بند آید اما من از زور درد و سوزش زرخها بیهوش شدم و دیگر چیزی نفهمیدم. بعد از آن که به آمدم، جامی از شراب به من نشانیدند تا قدری از نیروی از دست رفته باز گردد آنگاه به همسرم گفتم غول می‌دهم چنانچه در آینده بخواهم سیر بخورم حتما, حتما پس از خوردن یکصد و بیست با دستهایم را با علف شور و خاکستر علف شور و صابون کاملا تمیز بشویم همسرم گفت با این شرط حاضرم تو را ببخشم و با تو به عنوان همسر زندگی کنم سخنان بازرگان بغدادی که به اینجا رسید رو به میهمانان کرد و گفت به این علت بود که از خوردن خوراک راگو با سیر خودداری می کردم و در صورتی هم که مجبور به خوردن آن شوم باید شرطی را که کردم انجام دهم و بعد سخن خود را ادامه داد و گفت علاوه بر مرهمی که بانوان درباری روی زرخانی گذاشتند داروی دیگری به نام گل حنا که اصیل و دست نخورده بود از صندوق داروهای خلیفه آوردند و آن را روی زرخان گذاشتند و در ظرف چند روز به کلی التیام پذیرفت و من و همسرم در نهایت عشق و دادگی به زندگی زن و شوی خود ادامه دادیم. زندگی بسیار آسوده‌ای در قصر سلطان داشتیم ولی دلم میخواست آزاد و بدون تشریفات درباری زندگی کنم. اما جرأت نمیکردم که این موضوع را به همسرم بگویم. ولی او که بسیار باهوش و آگاه بود، خودش متوجه این نکته شده بود و بدون آنکه که روی من میآورد. با بیان حوشمندانی ملکه زبیده را به این نکته متوجه ساخته بود زیرا همسرم نیست به پاس محبانی های ملکه خود را اخلاقا منظم به زندگی در دربار او میدید ملکه هم در کمال مهربانی موافقت خود را با رفتن ما از دربار خلیفه اعلام کرد و پنجاه هزار سکه طلا به چشم روشنی عروسی به ما بخشید و من هم با ده هزار سکه طلا خانه با در نزدیکی دجله و قصر خلیفه خریداری کردم و با بهترین اساس و لوازم زندگی آن را آراسته کردم و قبل از آن که قصر خلیفه را ترک کنیم غلامان ملکه چندین کیسه بزرگ سکه های نقه برای من بودند که در واقع از جهت مالی کاملا بی نیاز و در رفاه بودیم من هم تعداد بسیاری کنیزان زن و مرد خریداری کردم و در خانه جدید من به خدمت مشغول شدند و ملکه مرتبا نسبت به سگولی خود کیسه های زر و نقره و پیشکش های گرانبها و, ها و بیمانند میفرستاد و زندگی بسیار راحت و شاهانه ای داشتیم تا آنکه بعد از یک سال همسر مهربانم بیمار شد و به زندگی گفت و مرا با آن همه ثروت و کنیز و غلام تنها گذاشت من اول فکر کردم همسر دیگری اختیار کنم ولی بعد فکر سفر و سیاحت در کشورهای مختلف و بازدید از دیدنی های شگفت انگیز سبب شد که از آن سرف شوم. بنابراین این خانه و کندیزکان و کلیه اساس زندگی را فروختم و بار سفر بستم. کالاهای بسیاری خریدم و به سوی کشور ایران حرکت کردم. از آنجا به بخارا رفتم و بعد هم به سمرقند آمدم و اینک هم در حضور سلطان هستم. سلطان گفت سرگذشت شنیدنی و حیرت آوری بود، اما باز هم حیجان و شگفتی سرگذشت سی سرگذشت گوش پشت من را ندارد. بنابرین باید فرمان دهم تا هر چهار نفر شما را به دار مجازات بیاویزند. در این هنگام پزشک یهودی را به پای تخت شاه رسانید و زمین ادب بوسه زد و گفت من داستانی دارم که از همه این داستان ها شنیدنی تر است و اگر سلطان بعد از شنیدن بهتر بودن آن را تصدیق فرمودند فرمان آزادی ما را صادر فرمایند. سلطان پس از اندکی فکر کردن سر خود را تکان داد و گفت داستان خود را بگو تا ببینم چیست. داستانی که پزشک یهودی بیان می کند. تازه توابت را شروع کرده و شهرت خوبی هم به دست آورده بودم که روزی غلامی به خانه من آمد و از من خواست که بیمار او را مداوا کنم. غلام مرا به خانه ی حاکم شهر دمشق برد. در آنجا مرا به اتاقی راهنمایی کردند. که جوان خوش‌سیما در بستر بیماری بیحال و ناتوان افتاده بود من به او درود گفتم و در کنار بسترش نشستم ولی او توان پاسخ خویی نداشت و فقط با نگاهش پاسخم را داد وقتی خواستم نبضش را بگیرم تا درجه حرارت بدنش را بدانم او دست چپ خود را به سوی من دراز کرد تعجب کردم که او هنوز نمی‌داند باید دست راستش را برای این منظور در اختیار من بگذارد به هر حال بعد از گرفتن نبز نسخه برایش نوشتم و رفتم. نه بار دیگر به دیدن این جوان رفتم و هر بار او دست چپ خود را برای گرفتن نبز در اختیار من میگذاشت. روز دهم ده که نزدش رفتم، حالش کاملا خوب بود و زبفود یافته بود و به او گفتم که از بستر برخیزد و به گرمابه برود. حاکم که در کنار من ایستاده بود، بسیار شاد شد و به نشانی سپاسگزاری لباس گرانبهایی به من داد. و مرا به سمت پزشک شهر دمشق برگزید و در این حال به عنوان پزشک خانواده خودش هم انتخاب کرد و گفت شما می توانید هر زمان که مایل بودید با ما غذا بخورید و به اینجا بیایید این جوان هم به من محبت پیدا کرده بود و از من تقضا کرد با او بگم ما ببرمم وقتی خدمتکار مخصوص او لباس این جوان را درآورد دیدم که دست راست ندارد و فقط مقداری از بازوی او باقی بود و این جوان هم از این جهت ناخوشنود بود و بدخلقی میکرد و تا آن وقت سر کرده بود آن را پنهان نگه دارد از آن پس اشرافیان او هر وقت می‌خواستند دارویی به بازوی او بمالند برای آنکه بعدا دچار عارضه تب نگردد مرا فرا می‌خواندند تا زیر نظر من دوام مالیده شود این جوان که میدید من از وضع او دچار حیرت شده‌ام به من گفت حیرت نکن یکی از این روزها برای تعریف خواهم کرد که سرگذشت من چه بوده است در یکی از روزها که نزد جوان بودم و از گرمابه بیرون آمد، به من گفت: آیا اشکالی دارد اگر بخواهم در باغ روی کنم؟ گفتم اتفاقاً گردش در باغ برای شما خوب است. آنگاه از من خواست که اگر مایل باشم با او همراه شوم تا او هم سرگذشت خود را برایم تعریف کند. کمی خوراکی خوردیم و دو سه دفعه دور باغ به گردش پرداختیم و بعد از آن زیر سایه دلپذیر درختی آلیچه گستردند و من و جوان روی آن نشستیم و او شرح زندگی خود را چنین تعریف کرد من در شهر موسر به دنیا آمدم خانواده من یکی از سرشناس‌ترین خانواده های شهر بود پدرم نخ برادر دیگر داشت که خودش از همه آنها بزرگتر بود و همه آنها هنگام فوت پدر، پیوند زناشویی بسته و همگی به غیر از پدر من بدون فرزند بودند من تنها فرزند خانواده بودم و چون فرزند یگانه پدرم بودم او هم تمام توجه خود را در راه آموزش و پرورش من به برد و آنچه که برای آموزش جوانی در شرایط خانوادگی من میسر بود به کار برد وقتی که قضی بزرگتر شده بودم و با بزرگترها معاشرت می‌کردم در یکی از روزهای جمعه برای شرکت در نماز جماعت به اتفاق پدر و عموهایم به مسجد بزرگ موسل رفتیم بعد از آن که نماز به پایان آمد و مردم از مسجد رفتند من و پدر و عموهایم روی قالی مسجد نشستیم و آنها درباره مسافرت به گفتگو پرداختند در زیبایی و جاهای دیدنی و انگیز و شهرهای عمده کشورهای مختلف تعریفا کردند یکی از عموهایم میگفت مسافرینی که به کشور و قاهره پایتخت آن رفتهاند از دیدنی های شگفت آفرین آنجا بسیار خوش و هیچ کجای دیگر را با آنجا نمیتوان برابردانه است. توضیحات امویم نگاری دیدنی های قاهره آنچنان در ذهن من نقش بست که از همان دسته به فکر سیاحت در کشور مصر افتادم. او میگفت هر کس مصر را ندیده باشد زیبایی های دنیا را ندیده است. خاک مصر زرخیز است زیر روز نیل وقتی پس از تقیان آب فرو از خود باقی می‌گذارد. که برای کش و بسیار سودمند است و گلهای فراوان و رنگارنگ رنگ در امتداد دلتای رودخانه می و زراعت برکت و فراوانی بسیار دارد زنهای مصری زیبا و دل ربا هستند و رفتار آنها همراه با مهربانی است آب رودخانه شیرین و گباراست شاعری که مجبور به ترک مصر شده بود گفته خوشابه حال ساکنین کنار رودنیل. که هر روز با زیبایی شما را به سوی خود می‌کشاند، اما من که از آن جدا شدم اشک از دیدگانم چون رود نیل سر و زیر است شما همچنان از زیبایی های گل های اطراف نیل بحر من شرید در حالی که من از این پس از آن محروم کاهم بود پدرم می رودخانه نیل به دو شاخه تقسیم می شود که به صورت جزیره‌ای در و در این جزیره تا چشت کار می‌کند. گل‌های مینا چون پرده سفید رنگ همه جا را پوشانیده و در قسمت دیگر سبزه و گل‌های رنگارنگ جزیره را به صورت زم و رودی در میان آب فام درآورده در جزیره بناهای زیبای مسکونی که به دریا نگاه نگاهی